هدف درونی سفر زندگی تو می توانم درستی سخن شما را بفهمم. اما هنوز فکر می کنم که ما باید در سفر زندگیمان هدفی داشته باشیم. در غیر این صورت دست خوش حوادث خواهیم شد و بابات خواهیم رفت. هدف هم آینده را در خود دارد. آیا اینطور نیست؟ چگونه می توانیم هدف داشتن را بازیستن در لحظه حال جمع کنیم؟ وقتی در سفری هستی بیتردید دانستن این که به کجا می روی خیلی کارساز است؟ اما فراموش نکن که در نهایت آنچه مهم است، گامی است که در لحظه ی حال برمیداری لحظه ی حال تمام آن چیزی است که هست سفر زندگی تو یک هدف بیرونی و یک هدف درونی دارد هدف بیرونی سفر زندگی تو رسیدن به هدف یا مقصد تحقق خواسته انجام کارها دستیابی به این و آن و غیره است که البته آینده را نیز دربر دارد، اما اگر مقصد تو چنان تو را به خود مشغول کند که لحظه حال را فراموش کنی، انگاه از هدف درونی سفر زندگی محروم میمانی. هدفی که به جایی که می خواهی بروی و یا کاری که می کنی هیچ ربطی ندارد و فقط به کیفیت زندگی تو ربط دارد. این هدف ربطی به آینده ندارد، اما به کیفیت آگاهی تو در لحظه حال، مربوط است. هدف بیرونی سفر زندگی به چشمانداز افقی زندگی تو تعلق دارد. اما هدف درونی سفر زندگی تو به ژرفای هستی تو در بعد عمودی بیزمانی لحظه حال تعلق دارد. ممکن است تحقق هدف بیرونی سفر زندگی تو مستلزم برداشتن میلیون ها گام باشد اما هدف درونی سفر زندگی تو با نخستین گام تو تحقق یابد. گامی که در لحظه حال برمیداری هرچه بیشتر نسبت به این گام آگاه میشوی متوجه میشوی که این گام در بردارنده همه گام ها و حتی مقصد است بنابراین این گام جلوه کمال زیبایی و کیفیت میشود این گام تو را به ساحت هستی میبرد نور هستی از خلال همین گام میتابد این گام هم هدف است هم راه و هم کامیابی سفر درونی تو سفر از خود به خود آیا دستیابی به هدف بیرونی مهم است آیا شکست و موفقیت در دنیای بیرونی اهمیتی دارد هدف بیرونی تا جای اهمیت دارد که تو هنوز هدف درونی سفر زندگی را درک نکرده ای. پس از آن این هدف فقط یک بازی است که می توانی آن ادامه بدهی و لذتش را ببری و یا از آن دست بکشی. در زم ممکن است در دستیابی به هدف بیرونی شکست بخوری اما در عرصه درون کاملا موفق باشی. عکس این هم صادق است یعنی در بیرون و ظاهر کاملا ثروتمند باشی اما در درون گدای گدا بمانی به گفته کتاب مقدس دنیا را به دست بیاوری و خود را از دست بدهی البته این نکته را نیز باید در خاطر داشته باشی که همه کامیابی‌های بیرونی دست خوش زوال و فنایند زیرا در دنیای صورتها چیزی ثابت و پابرجا نمیماند. به تعبیری همه صورتها فانی هیچ چیز باقی نیست. در دنیای صورتها همه چیز مشمول قانون عدم صبات هند. به زودی متوجه میشوی که رسیدن به هدف بیرونی نمیتواند به تو احساس کامیابی پایدار ببخشد. با دیدن محدودیت های هدف بیرونی، انتظار غیرواقعی خود مبنی بر احساس کامیابی پایدار، از رسیدن به هدف بیرونی را کنار می‌گذاری وان را به خدمت هدف درونی خیش در می‌آوری. گذشته تا به حضور تو را ندارد شما یادآور شدید که فکر کردن یا حرف زدن درباره گذشته ضرورتا یکی از شیوههایی است برای گریز از لحظه حال. اما صرف نظر از گذشته که به یاد می آوریم و شاید خود را با آن یکی می انگاریم آیا سطح دیگری از گذشته در درون ما وجود ندارد که ریشه دارتر باشد من درباره گذشته ناخودآگاهی صحبت می کنم که زندگی ما را شرطی کرده است به ویژه از خلال تجربه های کودکی ما شاید از خلال تجربه های زندگی های گذشته ما در ضمن شرایط فرهنگی ما هم وجود دارد شرایطی که شامل تاریخ و جغرافیای زندگی کنونی ما نیز می شود همه اینها نگاه ما به دنیا و زندگی رفتار ما، افکار ما، روابط ما و شیوه زندگی ما را شکل می دهند چگونه می توان نسبت به همه اینها آگاه شد؟ چگونه می توان از همه اینها رها شد؟ این آگاهی و رهایی چه مدت زمان می برد؟ دیرم که آگاه و رها نیز بشویم آنگاه چه چیزی برای ما باقی می ماند؟ وقتی توهم از بین می رود چه چیزی باقی می ماند؟ لازم نیست گذشتی ناخداگاه خود را بکاوی مگر آن چیزهایی را که همکنون در افکار احساسات؟ آرزوها، باکنشها و یا حادثهی بیرونی که برایت اتفاق میافتد منعکس می آنچه لازم است درباره گذشته ناخداگاه زندگی خود بدانی چالشهای کنونی زندگی به تو نشان می گذشته ته ندارد. هرچه بیل بزنی به ته آن نمی رسی. ممکن است فکر کنی که به زمان بیشتری نیاز داری تا گذشته را بشناسی و از آن رها شوی. به تعبیر دیگر ممکن است فکر کنی که آینده تو را از گذشته آزاد خواهد کرد. این یک پندار باطل است. تنها لحظه حال است که میتواند تو را از گذشته آزاد کند. زمان بیشتر نمیتواند تو را از زمان آزاد کند. به نیروی لحظه حال متوصل شو. کلید لحظه حال است. نیروی لحظه حال چیست؟ نیروی لحظه حال چیزی نیست مگر نیروی حضور تو، نیروی لحظه حال آگاهی توست که از صورتهای گوناگون فکر رهایی پیدا کرده است. بنابراین فقط در لحظه حال است که می توانی از پس گذشته برای هرچه بیشتر به گذشته بپردازی. گذشته را بیشتر تقویت میکنی و از دل آن خودی دروغین را بیرون میآوری اشتباه نکن توجه لازم است اما نه به گذشته به عنوان گذشته توجه خود را به حال معطوف کن به رفتار واکنشها حالات افکار احساسات ترسها و آرزوهای خود در لحظه حال گذشته در تو هست اگر بندازی کافی در لحظه حال حضور داشته باشی و همه آن چیزها را ناظر باشی، نه با انتقاد، تزیه و تحلیل و قضاوت، بلکه بدون قضاوت، آنگاه می توانی با توسل به نیروی لحظه حال گذشته را محو کنی، با کند و در گذشته نمی توانی خود را بیابی، تو خود را با حضور در لحظه حال میابی. آیا مفید نیست که گذشته را بشناسیم و بدانیم که علت بعضی از کارهایی که میکنیم چیست؟ چرا بدین شیوه واکنش نشان میدهیم؟ یا چرا ناخداگاه غم و اندوه میافرینیم؟ الگوهایی برای روابط ما میسازیم و غیره؟ هرچه بیشتر واقعیت حال خیش را میشناسی این نکته بر تو معلوم میشود که علت رفتارهای شرطی شده ی تو چیست؟ برای مثال چرا روابط تو تابع بعضی از الگوهاست و بدین سان ممکن است چیزهایی را که در گذشته اتفاق افتاده است به یاد بیاوری و آنها را شفافتر ببینی این خوب و مفید است اما بنیادی نیست حضور توست که بنیادی است همین حضور است که گذشته را محو می‌کند حضور انصر اساسی تحول بنیادی است بنابراین در بند فهم گذشته نباش همان گونه که هستی حضور داشته باش گذشته تاب حضور تو را ندارد گذشته فقط در قیاب توست که باقی میماند. ساحت حضور حضور چیزی نیست که تو فکر میکنم شما مدام درباره‌ی حضور به عنوان کلید سخن میگویید. این را میفهمم، اما نمیتوانم تجربه اش کنم. نمیدانم آنچرا که میفهمم همان حضور است و یا اینکه حضور چیزی است کاملا متفاوت. حضور چیزی نیست که تو فکر میکنی. نمیتوانی حضور را با فکر خود بفهمی. ذهن نمیتواند حضور را بفهمد. فهم حضور همان حضور داشتن است تا حاضر نباشی حضور را نمیفهمی. این آزمایش را انجام بده چشمان خود را ببند و به خود بگو نمیدانم فکر بعدی من چه خواهد بود آنگاه هوشیار باش و منتظر فکر بعدی خود مانند گربه‌ای باش که سوراخ موش را میپاید. چه فکری از این سوراخ موش بیرون خواهد آمد این آزمایش را همین حالا انجام بده به نظر می رسد باید مدتی چولانی انتظار بکشم تا فکری به ذهنم بیاید دقیقا همینطور است تا وقتی که در حالت حضوری پررنگ هستی از فکر رها هستی تو آرام اما در عین حال کاملا آگاه و هوشیار هستی به محض اینکه توجه آگاهانی تو فروکش می کند، فکر پا به میدان میگذارد سر و صدای ذهن بلند میشود آرامش از میان میرود تو باز به زمان برمیگردی بعضی از استادان طریقت زن برای اینکه میزان حضور شاگردان خود را بسنجند آرام از پشت سر آنها میامدند و ناگهان با یک چوب دستی نازک به سر آنها میکوبیدند اگر شاگردی در حالت هوشیاری به سر میورد متوجه حضور استاد در پشت سر خود میشد و جاخالی میداد. اما اگر ضربه چوب دستی استاد را نوشجان می کرد این مکافات فرو رفتن او در فکر بود مکافات قیبت و ناهشیاری. حفظ حضور هشیار خیش در زندگی روزمره به تو کمک میکند که در خیشتن خیش ریشه ای امیق داشته باشی در غیر این صورت ذهن مانند سیل عظیم جاری می شود و تو را با خود می برد منظور شما از ریشه داشتن در خیشتن خیش چیست؟ منظور آن است که تو کاملا ساکن بدن خیش باشی یعنی همباره متوجه میدان انرژی بدن خیش باشی و بدن خیش را از درون احساس کنی هوشیاری نسبت به بدن تو را حاضر نگه می دارد. این هوشیاری لنگر تو در دریای لحظه حال است معنای پیچیده انتظار به یک معنا حالت حضور را میتوان به انتظار تشبیه کرد مسیح در بعضی از حکایت های خود تشبیه انتظار را به کار برده است این انتظار از نوع انتظار ملالآور و پر نیست که پیش از این درباره اش سخن گفتیم آن انتظار نفی لحظه حال است در حالی که در این انتظار توجه تو معطوف به نقطهای در آینده نیست و لحظه حال نیز به عنوان مانی برای رسیدن تو به خواستهایت تلقی نمی شود. این انتظار ماهیتی کاملا متفاوت دارد و مستلزم هوشیاری کامل توست ممکن است در این لحظه حادثه‌ای بسیار مهم رخ بدهد و اگر تو قایب باشی و حضور نداشته باشی محروم خواهی ماند این انتظاری است که مسیح درباره آن سخن میگوید در این انتظار تمام توجه تو معطوف به لحظه حال است بنابراین جایی برای خیالبافی ها، فکرها، دغدغ ها،, ها، یادها و چشم داشت ها باقی نمی ماند. در چنین انتظاری عصبیت و ترس وجود ندارد. فقط حضوری هوشیارانه وجود دارد و بس تو با تمام وجود خود حاضر هستی با تک تک سلول های بدن خود در این حالت من که گذشته دارد. و آیندگی یعنی همون شخصیت به دشواری می تواند وجود داشته باشد با وجود این چیزی که ارزش داشته باشد از دست نرفته است تو اساساً خودت هستی در واقع تو بیش از پیش خودت هستی باید بگویم که فقط در لحظه ی حال است که تو میتوانی حقیقتا خود باشی مسیح میگوید همچون خادمی باش که انتظار آمدن مخدوم خیش را می‌کشد خادم نمی‌داند که مخدومش کی از راه می‌رسد بنابر این بیدار هشیار، گوش بزنگ و آرام می‌ماند مبادا بی‌حضور هوشیارانه‌ی او مخدومش سر برسد در حکایت دیگر مسیح از پنج زن بی‌مبالات یعنی ناهشیار سخن می‌گوید زنانی که به اندازه کافی روغن برای چراغ هوشیاری ندارند تا چراغهای خود را روشن نگه دارند یعنی حاضر باشند و بنابراین این داماد یعنی لحظه حال میآید و میرود و آن زنان به جشن عروسی که همان روشن شدگی است رسند. این پنج زن با پنج زن دیگر مقایسه شدند که برای روشن نگه داشتن چراغ به کافی روغن دارند یعنی هشیاری خود را حفظ میکنند حتی کسانی که متون کتاب مقدس را نوشتند معنای ژرف این ها را نفهمیدند به همین دلیل بود که بسیاری دچار سوء تعبیر و سوء تفسیر شدند و راه را عوضی رفتند به دنبال تفسیرها و تعبیرهای غلط از این ها، معنای حقیقی آنها گم شد این حکایت ها درباره اخر زمان نیستند بلکه درباره پایان زمان روانی اند این حکایت ها به استحاله ذهن نفسانی و امکان زیستن در حالتی کاملا تازه از آگاهی اشاره میکنند